جالسه ششم که وایت فکوسی است. موسی امام ذوالله علیه السلام. 28 مهر 1400 ادامه بحث روش اثبات وایت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين علی سیدنا و نبینا ابو محمد و اهل في روحی و الفدا با توکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار السلام بحث آغاز میکنیم خلاصه بحث این شد که هم قیاس در واقع بین حکمت و علت ما باید تفکیک بشیم مسادقی رو ذکر کردیم از مرحوم صاحب جواهر به جای فرمودن فلان مورد حکمت این ان ظاهر فلان حکمتون لا علتون در جای دیگه هم همین رو وارد شدن فرمودن که فلان مبنیون ال فل من مثلا فلان است و لا يخفى اعتماد علو مثل ذلك في تنقل الا خلاص دو مشکل این مساطیق اینطوری داشتیم از این طرف قیاس اولویت چی؟ قیاس اولویت رو برخی دیدیم اشاره میکنن به دشواری که در اون هست مثل اون صاحب جواهر جلد 14 صفحه 18 هشت هشت فرمودن توی مثلاقی تو بحث حج فرمودن آقا در یه حکمی رو میخواستن استفاده بکنن فرمودن که دعوای اولویت قطی و مساوات اینجا در قایت من اچه را چون که حکم شر و مسالش فی قایت الخفایلن نه حکم شر و مساله فی قایت الخفا پس یک مشکل اینجوری داریم به خاطر این که مسالهش در قایت خفایه به راحتی نمیتوانیم دعوای اولویت بکنیم در تقریر مرحوم ناینی هم همین رو دیدیم در این بحث نکا در و طالب جلد یک صفحه دویس و پونزب. یه اشاره داشتن که آقا اینجا استدلالای دیگر هم خب جای طرحش هست تا کسی نیا بگه که این زنی و مساله احکام خفیتون حتی یورد علیه نوبرنه و زنیتون لنه مساله الاحکام خفیتون ابتدا گفتن استدلالای دیگر میکنیم یکی دو صفحه بعد که رفتن جلوتر فرمودن که خوب اینجا البته دعوای قطعی بودن این مورد از قیاس اولویت هم حالا اینجا تعبیر قیاس نبود خود اولویت رو گفتن ولی برای قیاس اولویت دید تو م... میشه ادعای قطعیت بکنیم الو ایها لایبتن الست لا علا علاو لابیا ما آن دعوا طبیعتا تو این مصداق میگن بعد مصداقش چی بود یه مصداقی که یه کمی پیچیدگی داره چی بود اینطوری بود که در بحث مثلا نکا اگر مثلا یک کسی مثل عبد اجازه بتوانه داشته باشه که باز الغیر رو تملیک بکنه مالش نمی توانه تقریب و اولوی انه تملیک بزقیل غیر ازا لزمه بیل اجازه کانه تملیک مالهی اولا تملیک و مالهی اولا لنن شدت الاهتمام بهی فا صح في اهم ففی غيره یست خوب به طریق اولا خب بنابراین اگر بخوایم این فقر رو قبول بکنیم نکته اساسیش چیه؟ باید مورد به مورد اهم بودنش رو معلوم کنیم یعنی در واقع پیش فرض در واقع پس خلاصه ارزان چی بود؟ به رغم اینکه خلاصه توجه به مشکل قیاس اولویت دارند مثلا مرحوم ناینی ترجم مشکل قیاس اولویت دارند اون مشکل چی بود؟ به خفای احکام و مساله به عنوان مشکل قیاس اولویت این مشکل بود اما در برخی از موارد این نکته حساسی اینه در برخی از موارد با تشخیص اهم بودن یک مورد مورد می توانند اقامه چیکار کنند؟ اقامه استدلال به قیاس اولویت بکنند این نکتهش مهمه پس اولا دشواری رو نشان میده این مشکل وجود داره اما با این وجود میگن یک جایی ما می توانیم چکار کنیم تمسوق به قیاس اولویت بکنیم پس ابتدا منعه تمسک به مساله خفیه رو حواستشون هست میگن آقا نمیشه به مساله خفیه تمسک کرد اما اگر بخواییم یه جایی تمسک بکنیم شما باید یه شرط رو رعایت بکنید اون چیه در واقع کشف اهمیت که خلاصه جای تمسک داره و راه رو باز میکنه اگر شما در واقع اون مورد رو نتوانید احراز بکنید اون خلاصه مشکل جلو شما هست این مورد مهمه که خلاصه باید اون اولویت رو به دست بیارید اگه اون رو به دست نیارید دشواری هست منطور در این حال دی دوباره بعد میفرمن آقا والله که یوشکلو تمسک به حال روایت الوار در فی فلان بالفرح بین ال بی الوکیل المعزول الغير العالم بکن معزولن و نکاح هی ببینید اون روایتی که در مود قیاس هست در ذهن مبارکه شوه از خدمت حضرت میا میگه آقا مثلا اگه یک گش قد بشه دو تا قد بشه سه تا قد بشه چهار تا قد بشه همجون میره بالا تا یه جایی سعودی دیاش میره بالا یه جایی یه بار متوقف میشه خب شما طبیعتاً اینجا با ذهن عادی بخواید بررسی کنید میکیتا خب یکی خب کم دو تا طبیعتاً باید بیشتر بشه سه تا بیشتر بشه چهار تا پنج تا همینجوری برو بالا خب اگر بحث اهمیت خب اینجا عقل معمولی واقعاً شاید قطم پیدا بکنه که اینجا با افزایش تعداد انگشت خلاصه باید دیگه افزایش پیدا کنه اینجا واقعا عقل قطی نداریم اتمینان نداریم یا یه زن قوی نداریم ولی همینجا گفته میشه آقای این قیاسه کنار اینجا هم همینطور اگر اولویت رو میخوایم تقریر کنیم خیلی راحت به ذهن میگه آقای این رو خلاص فضولتن میتوانه مثلا در خلاص تملیک بکنه با اجازه حل میشه ولی چی؟ مالش نمیشه با این حال که نگاه که خیلی مهمتر از ماله سریع نتیجه میگریم ولی سرش چی میفرماین میگه آقا نه ما اتفاقا اون روایت عامه که داریم رد نگاه عامه به این... تو حالا اون مثال من از بیرون تو ذهن مبارک بود درس کردم اینجا هم میگن آقا در بحث خود همین ویع وکیلی که معزوله و عالم نیست که معزول شده همینجا فرق قال شدن خلاصه اینجا بین بی و نکاح یکی رو تجویز فرمودن حکم صحت نکاح کردند، اما در بین پس آقا میتوانیم بگیم شما از اینا اینجوری قیاس نکنید و قول قولهو علیه السلام ما اجود هازل کنم و افسدو او ان نکاح و اجدر این یه تفی و هو فرجون و منحو یکون الولد تا آخر حدیث بعد میفرمایند فظاهر و حاضر روایه اناو ازا صحبه الوکیل المعضور فصحت و نکاه اولا البته آغاز جمله میگن تمسک به این دشواره ولی در ادامه جوری خلاصه اولویت صحت نکاه رو در میارن این مقدر جملهش من برام حل نشد خب حالا در مجموع این دشواری رو داره بعد آخر مقام می و لاکن نکه خبیرون بند حاضر روایه لا یونافل مقام بل هو اول جمله هم که افته بود منعه ولی آخرش یه جوری صحت و نکاح اولا رو فرموده بود ولی دوباره ادامه اینجا یه جوری کرنه با اون صدر پاراگراف قبلش تناسب داره میگه این روایت لا یونافل مقام بل یعکده و زال که من این حاضر رفایه توستوات اهمیت و نگاه نکاح. و مقتضا اهم ان یکون کل ما هو و سببن لتحقق القتل اهم فلا محالت من ان یکون سببا لغیره باشه ما هر جا که دیدیم این مورد اهمیت داره قبول لأن فلو سه نکال فوزی صعبیه و ایزن لان تو اسباب هم به معنی عدم توقف علی الیزن سابق تغذیه تو سه فی او اما موارد باید دیگه چی لوکانه مالا اهمیت فی موجب الی نفوذ علی به موجب رده توکیل سابق فنفوذ اهم علیه او بعد در صفحه می فرماین که امام اینجا به سبب اد بیان اصل همیت بودن و اینکه نکاح اولا به ان یوهات فی من دون بیان طریق الاحتیاط اون اون پاراگراف الان اینجا معلوم میشه که اصل احتیاط رو میگن اما اینکه چه جوری احتیاط بشه رو بیان نمیکنند بنابراین بحث حالا در آخرم یه ای دارم ف... فقرات زیادی طولانیه ف... فنفوز الاهم اولا در مجموع همین دشواری محل توجهت قرار بگیره همین که توی یه مورد اگر واقعا اهمیتش کشف شد خب باشه هر جا که اهمیت کشف شد شما قیاس اولویت رو به کار میشه ببرید ولی اون جایی که اهمیت کشف نشه خلاصه نمیتوانیم به راحتی تمسک بکنیم در مجموع قیاس اولویت هم یک راه تعمیم چرا؟ چونکه یک جوری مستقیم ممکنه شما علت رو کشف نکنید ولی مهم اینه که شما خلاصه بتوانید یک اولویتی رو اینجا پیدا بکنید اولویتی اگر بود جای تعمیم وجود داره خب این پس یکی از مسائل بسیار مهم در بحث تعمیم در واقع نکته اساسی در تاسیس قواعد اینه که ما راهی پیدا کنیم برای این که از یک موارد محدود یک یا یک جایی عمومیتی ما داشته باشیم یا عمومیت رو بتوانیم به نحوی خلاصه پیدا بکنیم و ما بحثمون رو خلاصه نتوانیم محدود به اونها بکنیم یک جایی هم ما می توانیم حالا پس الان یه بحث تصریح ما داشتیم یک بحث خودش سریح نبود ولی تعمیم داشتیم بعد یک جایی هم تعمیم بباشد تمسک به علت و تعلیل داشتیم برای رسیدن به عمومیت یک جایی هم ممکنه شما اطلاقایی داشته باشید خب اگر اطلاق رو شما طبیعتا بتوانید با قرائن حکمت درست بکنید خب این یه مسئله جدیه یه مورد مهم حالا بحث مقدمات و حکمت و علت رو در موارد زیادی داشتید یه مورد خاص هم بحث چیه؟ این که شما اطلاق مقامی به توانید درست بکنید مثلا مرحوم محقق داماد در کتاب الخومس یه جایی در بحث کیفیت قسمت غنائم با اشاره به روایت حماد ابن ایسا که روایت زیادی بحثه زیادی توش هست زکات و غیر زکات بعد میفرمایند که قد یستفاد من ادت موازه صفحه 27 کتاب الخمس مرحوم محقق داماد میفرمایند فرماید قد یستفاد من ادت موازه من قد یستفاد من ادت یا بعد می کنم فی ادت موازه منها ادم و تعلق الخمس بالعرض المفتوع انوتن واک نظور فیزه که ال انها ان اس بعض و تکل موازه ظاهران فیح ظور اطلا مقامی فیشهایی این یه جاهای ظهور داره از سنخ ظهور اطلاق مقامین یعنی ببینید یه چیزی گاهی قات موومیتش بهش تصریع میشه یه کل ما مثلا شککتفلان یه جایی اطلاق داره میگه الانس مثلا معلم خب هر معلمی توش هست یه جایی مثلا فرض کنیم گفته معلم شامل مثلا سرایدار مدرسه نیست مفهوم معلم یه چیزه اما اطلاق مقامی یه جوریه که گایی شامل اونها میشه یه سکوتیه که در واقع قابل اطلاق گیری هست یعنی در مقام این اطلاق بوده مثلا فرض کنیم ببینید مثلا زلزله آمده شما به یکی میکی برو به معلم ها بگو بیان بیرون منظور شما چیه؟ آیا محدود به اون معلمه؟ نه اون سرایدار که در مدرسه باشه شما میخواید اونم نجات پیدا کنه دیگه حالا تو مورد ایشان می این روایت حماد ابن عیسی یه جایش زور ادلاق مقامی داره لن المتکلم ازاکانه به صدد بیان جمعی مایو تبرفیشه شرطن او شطرم او مانع مثلا و لم هنها که مانه اون وقد بیانه ادت شروط و الاجزای و الموادت و سکت ان اشیا یه تمال دخالت و فی به عهد انهای دخالم یوتمستق فی نفی هازل احتمال به سکوت فی مقام البیان المسماب الاطلاق المقامی زلزله آمده شما میگی آخه برو به معلم ها بگو بیان بیرون نمونن زیر آوار خب اسم معلمه گفتی مدیرم گفتی سرایدار بیچاره رو نگفتی آیا شما میخوای سرایدار ببانه؟ نه اینجا در مقام بیان این بودید که در واقع شما اون حکم رو خلاصه تأمیم ب... میخواید اونا نجات پیدا کنن وقتی که شما این هدف رو دارید اینجا شما بحثتون خلاصه گسترده است و میتوانید ازش در واقع فهمی داشته باشید پس اطلاق رایش چی بود این بود که شما مثلا میگید معلم خب این معلم اونم معلمه معلم در چه حالی؟ در خواب باشه؟ بیداری باشه؟ خب اینجا هم در واقع تمثل که به اطلاق شامل اطلاق لفظی و اینها نبود بلکه اطلاق مقامی هم می تواند تعمیم پس از این فوت که میشه شما استفاده بکنید و بعد یک استفاده فنی بکنید و یه جاهایی تعمیم قائل بشید این هم یک مورده اما طبیعتا تو همه موارد باید به اون مواردی که خود شما میتوانید تعمیم بدید دقت بکنید آیا میتوانید به هر چیزی تعمیم بدید مثلا یک جایی میخواهید شما خلاصه بیاید مثلا مسلمانان رو نجات بدید آیا اونجا در صدد کفاری که در حال جنگ هستید به اونها می توانید خلاصه تمثب کنید ببخشید اونها رو هم اراده کرده باشید نه اونجایی که لزوماً شما یقین نداریم که اراده عام کردید خیر ممکنه چون این بحثی نباشه خب یه صلوات دیگه رحمت بفرماید اللهم صل علی خب یکی از راه های دیگه اینه که آه سؤال اه، اه، اه، ما آیا می توانیم خلاصه اختزاءات دیگری رو هم ما در نظر بگیریم چه اموری میتونه ما رو به این تعمیم ها راهنمایی بکنه تعمیم در واقع یک شیوه هایی که اغلایی باشه شیوه هایی باشه که در حال قابل پسند باشه اصل این که ما بتوانیم یه جاهایی خلاصه تمسک به اموری بکنیم تعمیم بدیم این خودش این خودش جای بحث هست و جای بررسی داره الحمدلله رب العالمین